نقشی است که بر وجود ما ریختهای صد بالعجبی ز ما برانگیختهای من زان به هظین نمیتوانم بودن که از بوته مرا چنین فرو ریخته ای. ای در راه بندگیت یکسان که همه در هر دو جهان خدمت درگاه تو به نکبت تو ستانی و سعادت تو دهی یا تو به فضل خیش بستانو بده ای رفته و باز آمده و خم گشته، تا آمد میان مردمان گم گشته، ناخون همه جمع آمده و سم گشته، ریش از پس کون آمده و دم گشته. ای بی خبر از کار جهان هیچ نی بنیاد به باد است از آن هیچ نیی، شد حد وجود در میان دو ادم، اطراف و تو در میان هیچ نی